افسونه افسانه به نام خدا سلام افسانه که در زبان پارسی میانه به آن افسان میگفتند به معنای داستانی خیالی است که ساری و رایج بوده باشد و احیانا راست پنداشته بشود یا زمانی راست پنداشته شده باشد این داستان ها ممکن است درباره یک واقعیت یا یک شخص و مکان واقعی باشند افسانه ها معمولاً دارای درس های اخلاقی هستند یکی از این افسانهها ها ادهم کفش دوز بی باشد که جزو یکی از هزاران افثانه خطه خراسان است. با هم بشنویم این افسانه. یکی بود یکی نبود زیر این گنبد نیلی غیر از خدا هیچکس نبود در اون دوردورا یک گوشه ای از زمین خدا پادشاهی بود که با عدل و داد حکومت می کرد پادشاه گفته بود هیچکس توی شب کار نکنه و اگه خواست کار کنه بیاد اجرتشو از خود پادشاه بگیره روز جمعه هم همینطور مردم باید دکانها رو می‌بستند و هیچ کس تو بازار نمی‌موند که تا وقتی حرم پادشاه می‌خواست از اونجا رد بشه و بره هواخوری لب رودخونه کسی روی اونا رو نبینه. از غذا یکی از این روزها ادهم پینه که هنوز تو پنجاه سالگی داماد نشده بود و سربند این داماد نشدن نه خونه ای داشت و نه روزگاری و دکانش هم خونش بود و هم محل کارش برای اینکه کمتر احساس تنهایی کنه در دکانشو باز کرد و شروع کرد به میخوبیدن به ارسیای بند خدایی. ادهم فکر می کرد تا قبل از اینکه حرم پادشاه بخواد برسه این یه رو تعمیر میکنه و در دکانشو میبند. اما اون خبر نداشت که پادشاه تصمیم گرفته امروز حرمش رو زودتر ببره لبرود خونه اطمع تو همین شیشو بش بشه میخزدن و آواز خوندن با صدای زمختش بود که یکی از دوستانش سراسیمه سر رسید زده به سر اتروز جمعیاتم چیکار میکنی؟ جم کن بریز تو که حرم پادشاه داره میادیم ور فر سر به سرم نداره هشمت که امروز اصلا حسله ندارم حرم پادشاه این وقت روز ای خدا دروق نمیگم خوب کش کن صدای سامع اسباشون داره میاد کش کن اینجا چیکار میکنن؟ الان که وقت اومدنشون نبود پادشاه دوست داشته الان بیاد به من و تو چه زود باش جم کن تا سرت نرفته بالای دار جم کن این داده بیدند خدا بذاردم برسه کمک کنش کمک کنش باشه باشه زود بگی یا بگی اون جولو پرست زوار در رفتت تا تون منان دارو ببنده دیگه خواه ببندش کن ای وای چی شد تو فاقوشون بیرون آویزان جا مونده پادشا ببینه میفهمه حوشم امروز باد بوده برد پخش شدم هشبت باید برم برش دارم ببینم بابا کجا؟ آید بیارمش دیگه؟ ات... اونو ببینه درمونی هست ولی تو رو ببینه نه؟ برو اونو بر ببینم تو داری چه غلطی میکنی؟ تا رو روزی صورت نگاه میکنم ببینم چشم پادشا بکنم بب... بب... بب... بب... بب... بب... بب...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 d d d چشم بله ادهم کمرو و خجالتی از سوراخ کلید چشمش به دختر پادشاه افتاده بود و بعد سالها یکه و یالگوز موندن یک دل دل دل باخده یون شده بود اونم کی؟ یکدا فرزند پادشاه اما از بد روزگاری یا شاید هم کسی چه میدونه از خوب روزگار؟ اون روز وقتی اهل حرم پادشاه لب رودخونه مشغول خوشگذرونی بودن اتفاقی افتاد که سرنوشت اتهمون زیر رو کرد خداونده بگفتم سود و سرماس بگیرین لانه را و خانه. گرفتی لانه را و خانه. نیست بگفتم لاونه بگرفتی میزو, میزو. گرفتی میزو اینجا نشستن و کف کفتن و اهل حرم پادشاه و چوب زدن بلند شو برای امام امامزاده دعا کن خدا به یه عقلی بده آخه آدم دلشو میسپاره دست از ما بهترون اونم همچی که راوی افته زاق حرمش چوب بزنه میدونی بفهمن سرمون به باد میره یه بار بره خلاص بشن آخه این هم شد بخت و اقبال خدای ها. خدایا گفتم سر سامونم بده اما ندیگه اینطوری اصل باید دلم برای دختر پادشاه بده اخیه کتابیانی ها نیست بدعبم گفتم سوز و سرما آه باز سوز و سرما و اینا رو راه انداخت پاچون را بیافت ببینم آه آه آه نگاه کن قلچه باقای پادیشاه را افتیدن این برانبرو بید زدن چایین حرفا یک کاری کن کبک هم کن من دیگه نمیتونم بدون اون زندگی کنم با این لغمه ای که تو برداشتی هزار نفر از اهل شهر هم جمع کاری از دستشون برنمید باچه بی خود خمبرک نزن فکر این دختران هم از سر بیران کن شنیدی شنیدی سه بایی دختر پ گفت دلم انگار, انگار در, در بیچاره مابا بگی بشین تا یکی دیگه ندیدت به بگه تو چه مگه ما طبیبیم ببین هزار نفر ریختن دورش مادرشم هست و ولی کی میخواد دل برای پیدا گیاهی چه شوندی It's not true. بله و اینگونه گونه همه کفش دوز هنوز تعم دلبستگی رو نچشیده معشوقش رو از دست داد ساعتی بعد پادشاه برای اینکه جنازه تا فردا روی زمین نمونه دستور داد تا هرچه زودتر اونو به مقبره ببرند. همچنین پادشاه دستور داد تا طبق رسوم سلطانی آن روزگار چهل قاری قرآن همه شب رو در مقبره بمونن و برای دخترش قرآن بخونن تا صبح و بعد از طلو آفتاب گورکن و زنش جنازه رو به خاک بسپرن تا وقتی شاه بالاسر سر قبل میرسه همه ی کارها تموم شده باشه. اما بیخبر از اینکه اتم برای ودا با کسی که با یک نگاه دلش دلشو برده بود بخشی از رو برداشته و راهی مقبره شده تا با دادن یک اشرفی به هر قاری اونا رو بفرسه برن و خودش بتونه تا صبح برای اون قرآن بخونه و گوشه ای از عشقشو نثار دختر پادشاه کنه قاری هم وقتی دیدن ادهم میخواد سواب این قرائت رو یک جا نصیب خودش کنه اشرف یار رو گرفتن و رفتن بعد از رفتن اونها ادهم پشت در مقبره شروع به خوندن یاسین کرد از طرف دیگه زن حکیم آبادی بالا که بعد از مرگ دختر پادشاه رسیده بود و سرگردون به دنبال جایی برای خواب میگشت چشمش به نور اندکی افتاد که از داخل و بیرون مقبره بخشی از قبرسون را روشن کرده بود اون فهمید که طبق رسوم باید قاریان اونجا باشند زن حکیم که حسابی خوشحال شده بود و فکر کرد کنار قاریا میتونه شب و به صبح برسونه و چرتی بزنه راهش رو به سمت مقبره کچ کرد فکر کردم اینجا باید چهل تا غاری باشه مادر پس بقیه کجا؟ بسم الله <تصفيق> <ما. تصفيق> تو دیگه کی هستی؟ نه ترس نه مادر من زن حکیم بخت برگشته ده بالام فرستاده بودن پیم برای درمون درد دختر پاکشا اما وقتی رسیدم امر بهشون مشتبه شده بود مرده و اونو فرستاده بودن اینجا خودشونم مشغول کارای مراسم کفن و دفن شده بودند. هی هی از بس از آدار بودن دیگه نه کسی منو دید نه صدا مو منم دیدم تو این دی رو دار درست نیست بشم خال رو تب خال به خاطر همین راهم رو کچ کردم برم که نور رو اینجا دیدم گفتم شاید بشه اینجا پیش قاریا شب و صبح کنم و بعد برم پیر دیگه می ترسم شبیه تنها بزنم به جاده خوب گرگی چیزی براقی. اینجا در جوار مرده که جای خواب نیست پیرزن برو برو بزن منم قرآنم رو بخونم پس بقیه قاریا کجان والا من خواستم سبب این کار تنها ببرم هم. برای همین همه رو فرستادم رفتن حالا چه بلایی سرش اومده نمیتون دلبرکم یه هوی گفت آخ دلم آخ دلم هی پس داده دختر پادشاهی پسرم به خاطر همینم میخوای سواب قرآن خوندنشو تنها تنها ببری دیگه چه فرقی میکنه خیلی خب همینجا بمون تا من برم ماینش کنم ببینم چی به روزش اومده ماینه ما ای مرده که دیگه فایده ای نداره مادر من جان. طبیبم شاید کاری از دستم بر اومد نمیشنوی میگویم اون مرده است. آدم داشتیم همه گفتن مرده اما طبیبی که شوهر خودم باشه نجاتش داد. مواینش که زرر نداره بشین جز... بشین تا بیان دیوانه آه... پیر زن بزار مرده توی گورش آرامش داشته باشه نبزش کن میزنه همه همه میزنه این که میگی یعنی چه؟ نبزی چیزی شبیه قلبه اما همو سداش هم چه دست در میاد دارم می نیش دبمش پت کت میکنه حالا این که میگی یعنی چی؟ یعنی زنده است اگه هحمق جان استغفرالله مرده زنده است اصلا نمرده که زنده شده باشه <تصفيق> بگم نظرت نظر بدن دختر پادشا کارساز افتاده ها ماده واهی را تو به حقیق چیزایی ندیده و نشنیده. جای این حرفا کیف منو حل بده تو مقبره تا برش نرم کیف میخوای چیکار مردو چه به عادت فوزولی؟ کاری که گفتم بکن باشه باشه باشه باشه بیا. بازش آه بارکلا خوبه آخ آخ آخ، کجا چیکار میکنی حکین سوزن برای چه باز خسولی کردی سوزن بهش نزنی دردش میاد آخی نمیاد آخه آخه ما کلا ما شایل اینم دلبره که تون سالم و زنده شد، موجزه شد مرد زنده شد که کشمردم بودن و این لحظه رو میدیدن این خبر خوشم میشنیدن مرد زنده شد خفتم چند نه مرده بود تا بخواهد زنده بشه از اولم زنده بود بله و اینگونه دختر پادشاه از مرگ رهید زن حکیم دخترک و سر و سامون داد و به خونه اتهم برد دختر بعد از سرحال شدن حال و احوال خودش رو از زن حکیم جویا شد زن حکیم خودش رو آبری معرفی کرد و همه چیز رو برای دختر پادشاه تعریف کرد اما نگفت خودش موجب زنده موندنش شده اون ادهم و مسبب این موضوع دونست تا شاید به این واسطه نظر دختر پادشاه به ادهم جرب بشه. دختر هم که در همون لحظه اول از ادهم بدش نیومده بود و اون رو باعث عمر دوبارش میدونست و از طرفی هم نمیخواست مادر بیمارش با دیدنش دچار مرگ ناگهانی بشه تصمیم گرفت برای همیشه پنهونی در کنار ادهم بمونه. ادهم هم هم با کمک زن حکیم قبر رو پوشوند و صبح که گورکن برگشت گفت محض ثواب این کار رو به جای اون خودش انجام داده و یه اشرفی هم کف دست گورکن گذاشت و ازش خواست این راز رو برای همیشه پیش خودش نگه داره. ادهم هم چند روز پس از این ماجرا با بخش دیگه پسندازش خونهی خرید و دختر رو در حالی که صورتش رو جلوی آقد پوشونده بود، عقت کرد و به خونه برد و یکدم از دختر قافل نشد ات هم اینکه به کسی توضیح نده زنش کیه در دکانش و بست و خونه نشین شد و با بقیه پساندازش زندگیشو اداره کرد چند وقتی بعد خداوند عالم به اونها پسری عطا کرد پسرک روز به روز بزرگ و بزرگتر میشد تا اینکه خوب من چه کسی رو نمی بینم اینجا نگاه کن اینجا گرفتم بیرم با با بابا با با ازنا آیا آیا آی آی آی آی دستم بریم در مگیده بگم اونم از حالا به باید هر چی من از همه کشون دید تو پسته خونه پینفونم کردی دیر یا بعد بد رو باز کرم و باستم به جاوگویه شکراتی در همسایه خدا اون روزو نگارش ازدخانه چه فرمایی شد می فرمایی؟ مگه چی شده؟ بایی که چقدر سر و صدا می شما <تصفح> چی شد بابا ادخو؟ خب بیا بازی <تصفح> مگه نمی بینیشی آزده خانم از زبانی شده؟ مامان همیشه بد اخلاقه تو دیگه چی میگی؟ با دوباره روی خدا برست و هاوند کچنود بشیم بکنم تا بیان با, با آش درست کنم آخ چو نه من رفتم بابا ادن آخ چو تو هم این بگه رو بگه علاقه ر بعدم بگیری بشین این اروسی ها یه کوک چند تا کوکی بزن شد این مساله کوزگر که, که از کوز شکسته آب میخواد حالا کجاش آزده خانم پیه این کوفتریزه قفلت کنم قل خود رفع تو مطبخ بیاتی سوزوندن در مطبخ و محض همین سوریدن کوفتریزه یه بس زدم قد قفل دردو کن <تصفيق> <تصفيق> خب حالا بشین و بگو تو این چند روزه چی رو دلش آزده خانم سنگینی میکنه که اینقدر بد کرده؟ هیچی بشین بشین به من بگو خانم جام ناراحتم چون دست از دوخت و دوست کشیدی از <تصفيق> روزی که من اومدم تو زندگی درده کنی تو بروی خرقلا بستی چه کار کنم منو بخت برگشته؟ میترسم بازش کنم رازمون بیافته بیرون بشه نقل و نبات کوی و برزن و بازار ترس شراعت هم آخه کی غیر زن بالا میدونی تو کی و تو خوند ها؟ خب ترسم همینش آزده خانم میترسم زیاد برم بیرون به خودشون اجازه بدن ازم سوال کنم. ترس از چونو چرا گذشته ببین همین چند اشتفی بیشتر برامون نمونده امروز در دکونه از باز نشه فردا و شاخصادش و کفتریزش گرفتاری چنگال گرسنگی بدبختی میشن خدا اون روزو نه خانوم خانو خب اگه اینطوره همین الان الله بگو پاشو برو سمت بازار الان چهار سوره جز به ضروریات پا از در این خونه بیرون نذاشتی یعنی همین الان؟ برو عثمان برو <تصفح> باشه اگه تو اینطوری میخوای چشم <تصفح> <تصفح> شد؟ پشیمون شدی؟ نه خانوم کی که از خواست شما پشیمون بشه پس چی؟ فقط منباب گوشهایش روز اول دکون بذار کفتریزرم با خودم ببرم چند سال لحظه به لحظه با همین دور ازتون بمونم خیلی دلتنگ میشم کفتریزم با شما آفتاب قروم نکرده برگشتم کفتریزر بابا جون، بیا بیا، باید بریم جایی، بیا به امید خدا و این گونه ات هم بعد از چهار سال راهی دکانش شد و در برابر چشمهای حیرت زده مردم شروع کرد به کار. اما هنوز میخ به کفه عروسی کوفته ریز نزده دلندرونش به هم پیچید و بعد سفارشات مکفی به کوفته کفتریزه که به هیچ دلیلی نباید از جلوی در دکان تکون بخوره راهی مبال راسته بالایی بازار شد. در همین حین پادشاه هم که بعد از چهار سال افسردگی از مرگ دخترش به اصرار درباریان برای سرکشی به شهر اومده بود نظرش به ریزه که خوشحال کنار حوض روی دکان مشغول آببازی بود جمع شد و در حالی که وزیر از کودک میخواست تا از سر راه پادشاه کنار بره دستور داد که آره کنار بچه اگر نمی بیدی شادر رفت می های، با تو هم بروچه اگر نشریدی بزرگتر این بچه کجاست؟ می همه می چه دستویی دوری می دهید و عزیر تو که جزو قدیمی های دنبار ما هستی، بگو ببینم این پسر بچه شبیه دختر مرحوم ما نیست چه قبل یاله خوب نگاه کن وزیر درست مثل مست است که از وسط به دو نیم شده باشه آه... حالا که خوب نگاه میکنم میبینم حق با شماس قبل یاله ولی تا این حد شبات یعنی چه من که نمیفهمم آنچه چه که منو هم متعجب ساخته امین است زود بر آن بچه را سوار بر اسبت کن تا برگردیم سمت قصد ببینیم آیا نظر بانوی ما نیز همین است؟ ولی آخر قبل آلم بچه مردم را که نمی شود همین همین دل... که گفتم وزیر زود برو آن بچه را برای ما بیاور و پیش یکی از کسب پیغام بگذار تا به پدرش بگویند بچه پیش ماست و برای پس گرفتنش به قصر ما بیاید ولی قبل آلم از سایه بیا بیا اینجا بچه نمیام بابا ات همام اینجا تکون نخورم مگر با تو نیستم گفتم بیا بیا سب, سب اجازه بده این کار رو خودمان انجام بدهیم بله قربان بیا بیا اینجا پسر بیا نمیام. فرار کد قربان این چفل نوپاکه نمیتواند چون اسب ما دور بشود وزیر زود برمید و بگیریده زود باشید سربازا از نین شد که پادشاه بدون اینکه بدون پسرک نوه خودشه اونو به کاخ برد ع هم بعد از چند دقیقه که پای بست مبال بود به دکان آمد و ماجرا رو از دهان کذبه شنید و گریان و ناراحت روونهی قصر پادشاه شد اما از اون جایی که زن پادشاه هم از این شباهت بسی شگفت زده شده بود دستور داد بچه رو تحت هیچ شرایطی به پدرش تحوین ندن مگر با مادر بچه برگردد عتم قمگین و ناراحت به خانه برگشت دختر پادشاه وقتی موضوع رو شنید در برابر چشمان گریان عتم قول داد تا زنده باشد سر از مهر اون بر ندارد سپس با همراهی شدن به سمت قصر اما به محض ورودشون به قصر زن پادشاه با دیدن دخترش جیغ بلندی کشید و از هوش رفت بانوی من. با من یکی مادر. به من بگوید چطور می شود تو, تو به من بگو ندیمه م... من آه! آخر یه ندیمه کوچکی مثل من که خودش گرفتار داره این قصه است چه بگوید بانو؟ آرومتر مادر جان شما باید خوش باشیم به دیدن من باز از خوش رفت تو این دو ساعت این دهمین هم همین بار است طوری نیست بالاخره مجبور میشه تا بیار و این قصه رو باور کنه دوباره به هوشش بیار تا من برگردم چشم بانو بانوی من بانوی من چشمانتون رو باز کنیم نه نه نه نمی شود نمی شود حتما خواب و خیالات هست خدایا شما هم که هنوز مثل مادر نباورید پدر خودت بگو دختر کی این خسته را باور می کند که ما هر که منو سعی سالم جریه چشمش ببینه نه نه ما که نمیتوانیم باور کنیم پس اگه اینطوره همین و من و پسرام و شوهرم میگن و سرزار زندگیم دختر ما با اینطور حرف زدن م -م. برو دختر برو بر دست ندیمه تا دوباره آداب و رسوم قصر را به تو یاد بدهد برو باشه برای دفعه بایده که به قصر اومدیم ما و همه حالشون جا بود پدرجان سرکن دختر کجا دنباله هم گفتم که باید بینو سرزار زندگی باید. آه باز چون این سخن گفت خوب گوشت را باز کن دختر اگر پشت گوشت را ببینی از این به بعد می توانی آن پین دوز زمخ را هم ببینی چی میگی پدر؟ از هم کجاست؟ همان جایی که شایسته اشست سیاهچار چان سیاه تو جای بهتری برای کسی که چون این جرم بزرگی مرتکب شده سراغ داری ولی اون جون من نجات داد پدر اگه اتهم نبود من الان زنده زنده تو اون گرخابیده بودم بله ولی آن مردک حق نداشت به خاطر نجات جان دختر ما او را به اسارت بگیرم اسارت کدومه پدر من خودم خواستم با هم زندگی کنم <تصفيق> آه خدای بزرگ خدای بزرگ <تصفيق> یعنی دختر ما می خواهد بگوید دل باخته یه چون این موجوده که قابل تحملی شده قلب اتهم از قلب یه طفل خوردسولم پاکتره بس برای ما مهمه اونه بس هست دیگر دختر بس هست ما دیگر تحمل شنیدن این سخران را نداریم من هم بیشتر از این تحمل دوری شوهرم ندارم زود را آزاد کنید پدر وگرنه نه همین با کوفت ریزه میرم با با قصر خودم را پایین اگر کوفت ریزه را پیدا کردی چون این کاری بکن دختر خدایا شما چطور دلتون رو زن داریزم تو سیاه چال نه،, نه احمق نشو دختر احمق نشو اونو فرستادم پیش استاد تا اصول و تربیت دربارو بهش یاد بده حالا که اینطور شد همین الان خودمو از این پنجره پرت میکنم باین چه کار میکنی دختر؟ یکی کمک کند سوزار چرا نگاه بیکنید؟ یکی یکی اه اه اه چه شد؟ چه شد نیالم؟ یکی حکیم خبر کند بلایشید نیالم چرا نفس نمی کشید؟ توبارد کنید! توبارد کنید! بله و اینگونه پادشاه جان به جان آفرین تسلیم کرد و همه امارت پادشاهیشو گذاشت برای یکتا دخترش و ما بعد از مدتی دختر پادشاه در روز مبارکی همه اهل شهر رو به قصد دعوت کرد و در جشن بزرگی عدهم و به جای خودش بر تخت سلطنت نشوند همینک تاج پادشاهی بر سر شاه شاهان قبله عالم ادهم بزرگ گذاشته میشود می شود بله. تا باشد از این تقدیرها عزیزان افسانه قصه دلدادگی یک پین دوز رو شنیدید که یکی از هزاران افسانه زیبای خطه خراسان متاسفانه اطلاعات زیادی از راویان این افسانه در دست نیست اتهم کفش دوز نام اصلی این افسانه است دوستان و همراهان عزیز رادیو نمایش شما میتونید با تلفن گویای 162 تماس بگیرید و ها و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید سامانه پیامکی رادیو نمایش 301075 ه لطفا به ما پیامک بزنید و نظر خودتون رو در مورد افسون افسانه بفرمایید. نشانی ما رادیو نمایش نقط نویسنده: مریم تاجیک بازیگران: حمید یزدانی، کرامت رودساز، کامیار محبی، منا صفی، مہروق افضلی، سیما خوشچشم عباس شادروان، راضیه مومیوند محمد یگانه، امین بختیاری کارگردان بهرام سروری نجات افکتور نرگس موسابر صداوردار مجید آینه تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی است افزون زندگیتون دلنشین و مانا تا ای دیگر بدروب